so oh. رو الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام ورز علیه افترام خدمت محنی سروران عجمن خب بحثی رو که حقیر در خدمت شما سروران هستم یک ساعت بحث روش شناسی فکر از آقاست البته من اینطوری ارز کنم روش فقاحت حضرت آقا تو قسمت روش هم ما این میسیری در واقع ویژگی های فقه حضرت آقا و خدمتون برجسته بکنیم البته خب زمان ما کم هستش من یک قدود اینجا یادداشت کردم بله 21 مورد از نکات ویژه فقرابا رو یادداشت کردم که حالا بیریم جلوه چون زمان ما رو یک ساعته هر میزانش که رسیدیم خدمتون عرض می و هر میزانشم نشد تیکسش رو خدمتون میگیم اشالله خودتون میتونید دنبال بفرم. در مورد کلیات را روش فقه این که است که من روش و روش شناسی تو مستقر هست بین روش شناسی و روشی تفاوتی وجود داره اوی مجموعه کریمی که ایشون مسئول دفتر امام از زمان نجف بودن که بعدم امام که اومدن ایران ایشون همچنان مسئول دفتر بودن بعدم که مهاجرت کردن مسئول دفتر فقیه حضرت آقا بودن خب ایشون میدونید شاگرهای بودن شاگرهای خویی بودن شاگرهای شخص مرموم شخص ادی و آقای شاخردی و بزرگانی بودن خودشون میفهمدن من از لحاظ تحصیلات به حقی بودم که خودم میتونستم رساله بنویسم اما اینطور دیدم که در خدمت آقایون باشم. ایشون تو توصیف فقه حضرت آقا میگه ایشون فقهش در واقع جز اون که به امام خیلی نزدیکه ایشون میگه اگر ما ارز کنم خدمت شما میگه من احساس کردم بود ایشون میگه من احساس کردم تون جلساتی که با اول انقلاب با حضرت آقای در شنگسی مقواصف یکی مدفرت میشد ایشون می گفت من احساس کردم قرض تفکرش قرض تفکر امام هستش اما کلیت فقه عزت آقا تحت حسقای میکنم فقه است که خود عزت آقا این رو دارن که دویه بحث فقه جواهری هم خود عزت آقا و خود محلوم عزت امام رو بست فقه جواهری خیلی تحکیب دارن خب فقه جواهری یک خصوصیاتی داره که من یه مختصری چند تا ویژهیش رو عرض می‌کنم. از این جهت که این ویژهی ها تطبیق می بر کلیت روش فقهی عزت آقا چند از ویژهی هایی که برای روش فقه جواهری گفته می شود اولا اه این هستش که می که تو این فقه به به مجموع عدله نگاه میشه. در کنار بررسی تک تک این خیلی مهم نها. شما اگر بکن این نکاتی این که خدمتون ارزی میکنم اگر شما به کتاب قناموسیقی مراجع به فرمایی دقیقا این عراز من رو تطبیقش رو اونجا میتونید. این ما تو فقه نجف اینطوری از تک تک بررسی میشه استرال هم بگن صرف یا حجت یا لا حجت این یک روایت بس اگر سندش ضعیف باشه میشه لا حجت دیگه از پلاسه کیسه ادله فقی خارج میشه مثلا اگر میگن شهرت میگه خب شهرت از اساس اصولی حجت نداره لا حجت تموم شد اما تو فقه در واقع جواهری یا بعضی میگن آله فقیه اینطوری نیست ما یک واسطه بین حجت الله و حجت داریم یعنی یک واسطه به نام اعتبار یعنی ممکنه یک چیزی حجت نباشه اما اعتبار داشته باشه یه روز sanat ضعیف باشه دقت کنیم شما نتونی این رو به عنوان مز... به صورت مستقل مستند و حجم شردی قرار برید اما اینجور میسید بی اعتبار باشه این ممکنه در کنار روایات دیگه یا در کنار قدلی دیگه فقیه رو به اطمینان برسونه و همین بشه در روحه مستر خلاصه استار حجم این ویژگی خیلی مهمی هستش. استبلاحاً حالا این آدشون استبلاحشون معمولاً شنیدی توی مدرون و بحث من خیلی دیگه نمیخوام تکرار بکنم، تکرار بکنم بذار شما ببینید دیگه ایشون روایات رو تو کتاب و قناع که جمع میکنن یه شما ببینید 20 تا روایت رو 10 تا روایت رو توی این موضوع بررسی میکنن ممکنه تو این 10 تا روایت نقطاش ضعیف باشه یه روایت مثلاً حالا از ح وجود داشته باشه اما اینا رو با هم دیگه میبینه اینجوری نمینه خب این نقطه هست که اعتبار ندارد برم کنار اما این یه دونه رو واسه دو ما رو این رو بحث نه اینجوری بحث نمیکنه البته این نکته میشه ایشون حالا تو بحث استزهار دارن میگن این روایات ضعیف و در کنار ادله دیگه در کنار روایات دیگه ممکنه فرقی رو به اتمینار برسنن ولی اگر یک روایت یک روایت ضعیف باشه شما به جزئیات اون روایت کنید. مثلا شما تا روایت رو میذارید کنار همدیگه ممکنه این تا روایت هیچ کدوم به صورت مستقل خاجیت نداشته باشه مثلا همش گیر سندگی داشته باشه ولی این ده تا روایات و کو یک مفهوم کلی رو می‌رسونه اون مفهوم کلی رو می‌گیریم یعنی فقیه بترینان اما ممکنه این روایات خودشون یه جزئیاتی داشته باشن. چون میگه به جزئیات نمی‌شه تمسک کرد. مثلا من عبارت رو اینجوری گفتم. گفتم نگاه به مجموعه ادله در کنار بررسی تک تک ادله با این نقطه‌ای که خدمتتون عرض کردم. یا مثلا فرض بخوام از خصوصیات فقه, نق... فقه جواهری مثلا از مقاطر ویژهش به ذکر میکنن جا به بودن شهرت هست همین نقطه ای کهاز الان هرس کردم یعنی شهرت از حس اصولی وجه هست شغرت. من دو شعرت فتفایی هستی ما سنون شهرت شهرت فتفایی دهیم شهرت روایی دهیم شهرت عملی دهیم این شهرت شهرت شهرت فتفایی هم که دلالت هم میتونه جامعه باشه اما این که میخواد جاور زرف سند باشه اصلای نوم عملی است. برست شد. این شعرت عملی میتواند جاور زرف سند باشد. تو مثلا فقه نجف میگن نه. میگن شرا میگن خوبی اعتبار نداره. سفره. چیزی که خودش سفره خودش بی, بی اعتباره نمیتونه به چیزی اعتبار بده. اما تو فقه در واقع جواهری این طور نیست میگیم شغرت جابر زفت سنده. یعنی درسته خودش که تنایی وجه نیست نمیتونه مستر حکم قرار بگیره اما میتونه جابر زفت سند باشه یکی دیگه از خصوصیات فرخ جواهری تطبع اقوال هستش که اینا شما دقیقاً تو فرخ عزت آقا میگیم ببینید تو فقه نزده اگر دوستان تشکر ده باشن درس خارجی هایی که روششون روش فقه نجربی هست شما خیلی تطبع نمیبینید حالا تو اصول خیلی تطبع نیاز نیست چون اصول علم عقلی. اما تو فقه واقعا اغلی تطبع در حد برخی از این کوبه های یا اون استاد میپردازه به اقوال مثلا استاد خودش. اما تو فطح جواری اینطور نیست. شما میرین به اقوال حتی قدمات هم از می تو میشه. اما تو فطح قوم هم شما این رو میبین. چون فطح هم در واقع فطح جواری هستش. شما به شیخ توسی استناد میشه. به شیخ مفید استناد میشه. اقوالشون بررسی میشه. تو فطح خزد آقا هم طور هست. حالا که این رو به صورت مجزا فدمتون به عنوان بیجگی و عرض می کنم. تو وجود دار. و توجه به پیامد فتحا و واقع نگاری یکی از اون ویژگی های فقه نجف فقه جواهری است یعنی فقیه ناظر به پیامد خارجی فتحا میده آزمونو واس توضیح این مثال از امام خدمتتون عرض بکنم ببین ماشوره فقه ها با میگم الان توجه داشته باشه این فتوایی رو پاک صادره کنه اثر اجتماعیش چیه بعضی یعنی میگن ما با اثر اجتماعی چیکار داریم ما با که خدا را استفسارش کنیم چیکار داره تو جامعه چه اتفاقی میفته حالا خدا رحمت کنه ما چند سال تهران خدمت هاج مشتوای تهرانی بودیم یه اصطلاحی میشون داشت گفت حالا اصطلاح اول شهر رو به گولی زندن زیر لاحفی میگو تلبه ردی زیر لاحف توجه نداره داده داره داره. تو بیرون چهر که باید مفته میاد استنبات میکنه و فرق پاساده میکنه اصلا که نداره اثر سر چیه یا خود عزت امام توصیه میکنه به شاگرداشون میگه مسائل مکاسب معاملات مد... رو بری تو بازار خوهش دنبال بکنی بازار آخو باشه اما در واقع بازاره که مدرسه ما، مدرسه شکنساری که بازار رو بودش دیگه نجاب و گلوزه همه بچه شلال خراب شد و این ها میگه بدید اونجا دنبال بکنید، نشینید توی خودجوره بررسیب بکنید ببینید که مثلا چی در می آفت کنید نه باید به این ناظره به واقع یاد اسم باید بکن. خود از اطلاع امام مسئله بخی خیلی جالب داره امام میگه مشکور فوق همون میگه که خمس رو دو قسمت باید بخونی یه بخش سخن ساداته یه بخش سخن امام هستش امام میگه نه خیلی تمام خمس عرباه مقاسب رو تمام خمس رو باید تحبیل به امام بدی نه که دو قسمت هم میگه سادات شده ساداتی ببخش امام همش رو باید بدید امام امام امام موقع اگر سلاحی توجه به رست که میکنه اگر خواست اگر برمیر ساداتی دی ساداتی فرقی خودش بهش پرداخت میکنی بعد امام تو توجیه که بابا مگه ساداتی فرقی چقدر هم حالا شما آینده را مثلا نگاه کنو فرض کنی که همه مردم اروپا بیا مسلمان بشن همه شیعه بشن و این که رقم خونس خیلی رقم زیادی و همه اینا رو خرید به ثادات، میصن مگه اینقدر قد ما اصلا فقیر و بعد حالا فرض کنید یه سال دادی شما یه سال اگر خمس نصف خمس فقط اون یه منطقه هزیم و به فقراي ثادات همه اینا میلیاردر میشن سال بعد بعد چیکار کنیم؟ این همون توجه به در واقع پیامد و اثر اجتماعی اون فکواس که گوی نواق نظر فقیق رو چوار میکنه؟ عوض میکنه یکی دیگه از بیژگی های فقیق جواهی کلبیات نیست چون همه اینا دقیقاً بر روش فقیق از اتا آقا تصویر میکنن حالا جلوتر بعضیش هم باز برجسته تر میکنن بحث ارز کنم خدمت شما که نحوه اعتبارسنجی روایات هست میدونید دو تا مکتب کلبی تو نحوه اعتبارسنجی وجود داره یا بعض یا خبر سقه رو حجت مبونن. به این معنا خبری اعتبار داره که تمام غباط برابطه سلسل سندتی باشن سده باشن یه نفرشون که داشته باشه حدیث اعتبار چی میشه صابق میشه اما اون نظر دوبومینی که میگن خبر موسوبون به حجت هم. یعنی چی؟ یعنی مختوا تحصیل گذار هستش تو بررسی سند این تک عامله است و عامله ما هم سند رو بررسی کنیم هم محتوا رو بررسی. بزا ممکن سند یک روایتی ضعیف باشه اما محتوا به شکلی باشه این محتوا قرائمی داشته باشه که ما به این حدیث استناد بکنیم. یا حتی بالعکس سند روایت سند درستی باشه اما محتوا به شکلی باشه که محتوا قرینه وجود داشته باشه که ما نتونیم علل صحت سند این روایت رو تایید حالا حضرت آقا تو کدوم اسمته؟ حضرت آقا جزه اون کسانی که موسوح به بینید موسوح هستند. بسروری و شما کاملا توی فقه تو بحثت قناهشون نگاه بخونید خوبشون رواد بسیاری میرن که اکثر اینها از حیث سندی ضعیف ولی اینطور نیست بگم گرید که شما تو فقه نجفی می‌بینید دیگه مثلا میگن این این مسئله مثلا ده تا رقایت داره نخ تاش زعیفه اصلا میذارن کنگی مخشو بررسی نمی کنن از حیث سندی زعیفه بذاریم کنار این رقایت حالا موسطه یا مثلا پس رو رقایت سیارینو بررسی نمی متنش مخشو بررسی, بررسی اما اینجوری نیست علارت میگه اکثر این رقایت از حیث سندی زعیف هستن اما شما دقیقا متن اینها چند و کاش میشه این داروا خصوصیات فخ جواهری هستش و یه بحث مهم دیگه ای که وجود داره کمرنگ بودن و اصول عملی است ببینید فخ ن... فخ این فخ جواهری که میگم داروا خصوصیات فخ قومم هست به تکرار کردم مثلا فخ یه خصوصیاتی داره که این خصوصیات باعث میشه که استفاده از اصول عملی پهرد میشه شما مصوله های خویی رو ببینید خوبه نفر این رو از حیث می بررسی میبرسید رو که ایشون مثلا چند تا مسئله مطرح کرده تو این مسئله چه مقدار به اصول عملی مراجع کرده و این رو تو تو جواهرم دقیقا همین کار رو بکن. ببینه چندتا چند تا مسئله رو مطرح کرده و در چقدر به اصول عملی مراجع کرده ببینید؟ این نحوه اعتبار سنجیه فقه نجب که اگر یک روایتی سندش مشکل داشته باشه از اعتبار خارج میشه یا از اعتبار خارج میشه از اعتبار خارج میشه این و همچنین نحوه استظهار برید برون خیلی تفاوت داره بین نحوه استظهار از روایتی فقه نجب و تو فقه جواهی و فقه این فکر نجم خیلی سراحت مهورد خیلی سراحت مهورد یعنی شما یک محتوایی رو که میخوایی به روایت مثلا استنار بیدی بگون این مطلب از این روایت فهم بگیم چونکه کجای روایت اومده دقیقا به من میشون بده من سلام میگم بیام سراحت محور بودن این سراحت محور بودن اثرش اینه که شما خیلی جا نمیتونید از باید نتیجه بگیرید نمیتونید از بعض من قرره قرآن و قرها هم خیلی پر رنگز خصوص که مجب خیلی تمسای به قر ها هم نمیکنن این هم بهید ببینین. د تمسای به قرآن نمیکنن قره ها من برگ هم برانه. اما واقعا برید خصولش رو نگاه کنین منابع چهار تا اولا قرها اما این تو مقام عملی که شما می میرید یعنید واقعا قرآن به عنوان یک منبع مستقل که یه اول بره مثلا سراغ قرآن چند و کاش دو قرآن داشته باشه که بخواد ازش استخراج باقیم بکنه اینجوری نیست معمولاً شکلی خیلی از این آیان ها اگر یکی از این آقایون قبلا به یکی از آیات قرآن تمثل کرده باشه اینا بحث میکنن که آیا این این این آیه قرآن آیه دلالت داره برای این مصطب دلالت نداره اما این که مستقل برن مراجعه بکنه نه اینجور بسید <تصفيق> خب کردم داشتن من بله خب چون سراحت نهورن لزا خیلی وقت نمیتونن از منابع، یعنی از عدل اشاری نمیتونن نتیجه بگیرن لزا میتونن نتیجه بگیرن یعنی اون زرافت، اون, اون،, اون مبانی که تو استثبار داره که در نطفقی به اطمینان نهاریست فقی به اون لذا به سمت و اصول عملیه میره تو فقه جواهره اینطوری یکی تو نحوه اعتبار سندیش وصوق به صدوری هستن لذا خیلی از ربایت بایی کسن از زعیبی داره ولی توی در واقع اداد عدل به فقید باقی میمونه و همچنین نحوه استثبار این شکلی میز. نتا این بحث های جدیدی دیدید تو بحث های حدیثی مطرح میشه خانواده حدیث و یا مثلا فرض نظام حلقوی و حیرمی که آیا مطرح مدرح می کنن یا به عبارت ساده تر عرض بکنن این شما از مجموعه یه سری روایات یک برداشت کلی داشته باشه یا اینا رو همه کد دارن می یا یا مثلا فرض بفرماییدیم بحث های روش تحقیق های جدید که بعضی میان تو مباحث حدیثی و بعضا تو مباحث فقری میخوان به کار بگیرن مثل تحلیل مضمون و تحلیل محتوا و گرند تهوری و میخوان از اینا یعنی در واقع به وسیله این روش های فقهی از روایات و آیات برداشت داشته باشن اینا طبق مبانی نجم ممکن نیست. چرا؟ اگه دوستان با این روش تحقیق آشنایی داشته باشم،, آشنایی باشم شما اون روش های تحقیق کیفی اون پایش خودزنیه خود, خود میزنی به روایت یعنی یک برداشتی از روایت رو عنوان خود در نظر میگیری دیگه اون مرد رو میذاری کنا و بعد این خدا رو با هم دیگه جمع میکنی دوباره به اسطلاح مثلا خودم رو میکن مقول میکن hey سه چهار تا کدو میذاری واسه یه مفهوم تر از استخراج میکنی مثلا فرض کنید در نهایت به چهار تا مؤلفه کلی رس مثلا میخوایم توی روایات نظر روات در مورد خشم چیه تمام روایات خشم رو جمع میکنی یه کد میذنی مقاله بندی میکنی بعد میای تو مقاله مینییسی که آقا از نظر اسلام از نظر روایات ما این چهار تا عامل این پنج تا عامل عوامل کلی خشم یا مثلا عوامل کلی درمان خشم اینا خیلی رو بحث فقه نجف که حالت سراح می رو نبید باری خیلی ها. اینا همه زنی دارد. به در ما من به دوستان میگم. واقعا فقه نجف تو بحث رو به علوم انسانی ها سخت سخته باید نبشن. با باشه. ما بعض از اصلاحاتی تو بحث اینکه ای ما به سمت طولید علوم انسانی اسلامی بریم که جوز دک های اصلی از وقت آقا هست این بار روش فکر نجد خیلی جور در یعنی وقتی اونا میگن نمیشه نمیشه ها ما میگیم میشه ما توجه نداریم با روش فکر نجد واقعا نمیشه بقید کردیم خب وارد بشیم در مورد خود ویژگی های فقه آقا یکی از ویژگی های جدی فقه عزت آقا قلیش فقه عزت آقا مدوشناسی. مدوشناسی کامل و دقیق هست که البته این جز همون ویژگی های فقه جواهری هم هست چون بیمون یک چیزی تو ذهن طلبه جا گرفته یا شناسی به فقیه این رب نداره فقه ای باید باید باید خیلی واقعا برای من این جمعه جای سوال داره که واقع ما،, ما میگیم که آقا موضوع علت و قول چون مدیده موضوع علت و قول می موضوع رو نشنسه چیتون بخوایی بخوایی بکنه موضوع شناسی دقیق و کامل گلوان نمونه عرض بکنن فرض بفهمد آقای بحثی رو دارن در مورد ماء الحمام ایشون میگن مثلا در گذشته میگفتن که ماول حمام این چون کر محسوب میشه اصطلاحاً معتصمه این فرض فرمایید که اشکال نداره میگه ماول حمام رو موضوع شناسی کن آی اورجندین که این رفتو موضوع شناسی کرده گفت این هفت تو چه داره بعضی به منبع که کره بس و بعضیشون بس نیست در دقیق بررسی بشه چون نمی‌تونید اصطلاح ماول حمام رو بگیری بعد بگید که خب آقا ماول حمام رو گفتن پاک شد. این معنا که با در واقع اتصال و به نجاست نجس نمیشیم متنجس نمیشیم مورد در راعت بگیرید بعد موضوع شناسی کنید ببینید آیا الان واقعا این مول حمامی که الان هست همون مول حمامی که اون موقع وجود داشته و تا اصلا اون مول حمامیان که اون موقع میگفتن همه مول حماما اینطور نبوده که خاک باشه هست و عس چه بوده بعضی از اینا به منبع ورسوده بعضیش بس یا دقیق بفرمایید، این کتاب درستان، ناموسیلی، هفتا دو, دو تا درس واقعای چند سال یا سه سال یا از درست خارج این رو تو خب اون برگزار میکنید این کتاب رو واقعاً با دقت مطالب کنید رداشت بقی از اتاها رو میخوایید بهش مسلط بشید این کتاب رو دقیقاً با این شاخصهایی که خدمتون ارز میکنم شما نگاه بکنید دقیقاً رداشت فلیخی و قوت فلیخ ببینید مسئله ای داره تو بحث بیتول قنا جالبه توی بیتول قنا ایشون میفرمونم که حالا اول بگم هدف چیه ببینید قدم ما مطلق قنا رو حرام میبنستم مطلق قنا رو حرام میبنستم حالا یه دسته از روایاتی که اشت اسطناد میکردن، دقت قد میکنید روایات بیتول قنا بود و امانتی که به صورت کلگی میگن که اگر در یک خانه قنا باشد چنین میشود، چنان میشود، ملائکه داخل میشود، نگم از این دروقع اثرات وضعی که بر خانه که قنا درش نراختند چه دروقع ذکر میکنند، از دروقع محصول خب، بعضی از اینا قرمت رو برداشت میکنند، میگن نباکنه ای وقتی این همه اثرات منفی، اثرات وضعی و چطوری اثرات وضع منفی بار میشه بر اونایی که درش قنا هست ولی که انا حرامه چون اگه حرام نباشه این همه دردسر نداره که ایشون موضوع شناسی میکنه ببین موضوع شناسیشون هم حاصل مطالعات ایشون الاغانی اول فرج اسپانیو رو فکر میکنه اگه شما چند دفعه بگی چند جلد دیدی چند دفعه مطالعه کردی کتاب فهرست نشده برش فهرست زدم کاملا گوی باص تاریخ که نگاهمسونو سلعت ایشون می‌گفت این بریم این روایت در مورد زمان امام صادقه وقتی بر که بریم موظو شناسی می‌کنیم ببین این, این بیت یه جای خاصی بوده یه کلبه اهوار عام نیست یعنی اون خانه‌ای که درش قنا نواخته می‌شد نه منظور این نیست بیت القنا یه جای خاصی بوده افرادی بودن می‌رفتن یه سری کنیزهای مقنیه رو گرفتن می‌وردن اونجا خلاص امروزش میگردن کابالایی گرست میکردن و مردم میدادن پول میدادن نگاه میکردن خوش میدادن واسه بعضی ها برای موسیقش هم برای نگاه کردن کمیز های مهندیه میامدن اصلا داستان اینه این شما نمیتونی با این روایات همه از سوچ بکنید بگید پس مطلب موسیقی حرامه نه این مورد یک موضوع خاصی هست. این موضوع شناسیه حالا این بحث موسیقی خیلی واقعا به نظر علی الان جزء اون مسائل مقتالبه زمان خودمون حتی بین متدغین یعنی هست الان سرودهای انقلابی که نواخته میشه الان یه دمی گچریم چرا اینو حرام یه دمی گنداشکی نداره حالا این مسئله رو به صورت تخصصی روش کار کردم یه کتابی رو به سفارش دفتر از تطور نوشتم الان فکر کنم دیدم هم انجام شده اینشالله باید کنم توی ماهای اخیر و یه چار اونجا اولا من یه بحث بیاناتی تمام بیاناتی از ات آقا را آوردم کنار همدیگه تحلیل کردم که این آقا تو بیاناتشون چجوریه چون خیلی متفاوته دقت بکنه آقا وقتی با موسیقی دانه ها صحبت میکنه با صدا صحبت میکنه با وزیرت ارشاد صحبت میکنه تا یا باید که با مردم عادی داره صحبت میک من دیدم یه کتابی نوشته بود و توجه کرده بود به اون سخنانی که حضرت آقا با موسیقیدان ها دارن بعدماده بود نتیجه گرفت اون 800 صفحه کتاب نمیشه یاد بخان نقدش آقا ما ناقلش هم خود من بودم گفت آقا نظرش که ترویج موسیقی جایز است از اینا اون داره با موسیقیدان ها صحبت میکنه با اصحاب رسانه داره صحبت میکنه گفت آقا ببین آقا اینجا گفتن گفتم آوا مشی اون فکر تو باید و بیانات رو ببینی وقتی مجموع بیانات رو کنار هم دیگه اون تغییر رو بعد خود آقا فتقای سریع داره که ترویج موسیقی جایز می تو چه از بیانات آقا نتیجه گرفت ترویج موسیقی جایز است اتا مولی یه فصل فقیقی هم اضافه کردیم. این خیلی مهمه و واقعا هم جیگر کاری که امام و آقا انجام دادن این که ببین. زمانی فقطو را امام و آقا دادن که هنوز فقهای ما و سایقای پایگو اینا زنده بودن و مطلق موسیقی رو حرام می‌دونسن الان بعضی از فقهای مطلق موسیقی رو قنور حلال می‌دونن اما آقا ما مواد تقصیر قائل شدن خود امامم قبل از انقلاب قائل به چی بود حرمت مطلق موسیقی بود درسته ولی وقتی تشریف آوردن ایران اول انقلاب می دونی خب می آمدن مثلی سهور می خوندن خود امامون خب موسیقی داشتی حالا به تغییرون هم قناه بود دیگه اتفاق هم از خوزلا و آین بزرگان و اسادی به امام اشکال کرد خب هم هم ا... یکی از این عصاقی هم حالا می خواستم اسمشو ببرم اشونم اشکال کرد بعد امام می آبا شما به مددن موسیقی رو حرام می دونی چی شد اینکه آهنگ این موسیقی امام نداره از اونجا معلوم شد امام تصفیه قرار شد ما موسیقی حرامه موسیقی حلاله دنای حرام داریم قراین چی داریم حلاله حالا تو همون کتاب نگاه کنید توی یکی از درس‌هاش آقا میگه ما از امام سوال کردیم گفتیم آقا این موسیقی که جلو شما گوشن شما که میگه موسیقی حرامه یا شیخ متحرکی که در واقع ترور شد خب یه چیزی در مورد شیخ ساختن اونا خودی آهنگ داشتی که ساختن به ما بودن این که طیب فرق نه اشکال ندار اصلا نمونه این رو بسازیم امام تبکیه کارش شدن این نگاه کنید ببینید چه چون ببینید ما بسیار روایات فراوان داریم که ازش برداشت این میشه که مطلب موسیقی حرام مطلب قناع حرام برید ببینید, ببینید که آقا با چه ردشید چون آقا بحث مبسوطه، دار یکی از مبسوطترین بحث های. قنوم بوسیدی در هایی از اداغاستی به این میزان نداری ممسود به این شکل به دونه چدوری اطلاق روایت ها رو بیشتر یه دونه از این شکستانه اطلاق روایت تو همین موضوع شناسی هست این که میگه چی تو دیگه هست بکردن چی دیگه حالا بحث اینجا مسئله هستش که چون بحث موضوع شناسی من این خود اینو بحث بدم و یه می ندارم خیلی نشه. در نهایت تا نهردم لیستو خدمتتون عرض میکنیم خصوصیات رو ببین اساسا ام... جمهوری اسلامی چون این نکته رو یادم رفت به خود وقتم کم میاد من با سرعت بیشتری برم اونقدر سرعت میره بالا خودم یادم نمیاد از خودم جا میمونم به امام گفتم که اینکه اینجوری گفتن نه این که تو جمهوری اسلامی هست اشکال داره اشکال نداره اما همه همین موسی تو اگر ببرن خارج کشور این این خیلی آقا میگه که اون موقع امام علتش رو نگفت واقعا حرف به ظاهر اقتدار هم آدم میکنه حرف عجیبیه دیگه یعنی حرام حرامه دیگه چه تو جمهوری اسلامی باشه تو چه قیل جمهوری اسلامی امام میگه نه این موسیبی تو جمهوری اسلامی حلاله همین موسیبی رو اگر داری خارج کشور میشه حرام آقا میگه ما اونجا نشد که بپرسیم علت چیه بعدن هم خودعزت امام نگوستن البته من توان تو اینو توجیهش کردم که جلیان چیه ارز کنم خدمت شما حالا فرض کنید این حکومت جمهوری اسلامی چی تأثیری میتونه بر احکام قناع موسیقی داشته باشه آیا این تحصیل بزاری از نوع حکم سانبیه؟ آیا این تحصیل بزاری از طریق حکم حکومتیه؟ بنابرای اینکه ما حکم حکومتی رو در عرض حکم صانوی نرام بدیم. چون می‌دونیم حکم حکومتی؟ اینکه محتواش چیه؟ آیا حکم مستقله؟ آیا همون حکم صانویه؟ یا اصلا نه، خودش حکم اولیه، اختلاف وجود داره. حالا با وقتی این حکومتی این فرض ما میتونه نیست. یعنی جرسش جرس حکم نیست. یا از باب تحصیل گذاری بر حکم اولیه، یعنی موضوع تحقیل می کنند به نظر همه اینا اصبابه ای که موضوع تحقیل می کنند یعنی در واقع از طریق تحصیلی و الگوشن خیلی فهمش به نظر من خصوصا تو مسئله قناع موسی خیلی مهمه. من حاصل اون دیرس و پنجه سفر اگر بخام خدمتون کنم مخ مطلبی رو که از ایتا آقا می تو بیاناتش بگه بگه خوب که ببین این قناع موسیقی که هزرات معصومین حرام کردن یه سمیخ خاصی از قناع موسیقی بود که مخصوص دربار بوده. چرا هزرات معصومین نه نه به صلاب نگفتم خب قسم حلال داره قسم حرام داره این قسمی که مثلا توی دربار نواخته میشه حرامه ممکنه قسم حلالی داشته باشه. هر باقی اینجا اون موقع اصلا موسیقی حلال تصور نداشته. به اصطلاحشون نمیگه موسیقی متعالی اصلا زمینه نداشته چون تولید کننده موسیقی چیا بودن؟ یا آدمای پول پولدار و بودن یا دربار و درباریان بودن اینا اساسا موسیقی متعالی تولید نمی اما جمهوری اسلامی بستری ایجاد کرد برای تولید موسیقی و حالا اصطلاح قناع کنوی متعالی که نه از حیث آهنگ، نه از حیث محتوا، نه از حيث زمینهش مشکلی نداشته باشه. بذار ایشون موسیقی و قنا رو توقسم می‌کنم. موسیقی حلال، موسیقی حرام. موسیقی حرام چیه؟ من که اونی که مذلل در سبيل از قرآن خیلی دقیق‌ها، یعنی بحثش رو حتماً اونجا دنبال بکنیم بحث بحث خیلی دقیق هستش از کنم خدمت شما که از دیگر ویژگی های فقه ایشون هست کردم تتبع و فحص و توجه اقوال فقها و تجزیه و تحلیلش هستش. اگه واقعا شما مقدمه کتاب قنوموسی رو ببینید ایشون میگه من خواستم قش رو مطرح کنم. بحث اثم رو مطرح کنم اون زمان که این کتاب آقای رضا مختاری که کوستان کتاب چاپ کرده الان چهار جلد. برید ببینید قنوموسی چار جلده چاپ کرده ببینید. ایشون اومده تمام رقوعه و تمام رساله هایی که فوقه ها در مورد قناع موسیقی نوشتن که این چار جمع کرده الان اون موقعی که آقا مطرح کرده من سه جلده شده بود ایشون میگه که من میخواستم بس قناع رو مطلق کنم اما دیدم این رساله ها اومده نگرد داشتم عشق رو مطرد کردم تا این رساله ها رو مطرد سی تا رساله هست ببینید سی تا رساله مفصل ایشون اول این سی تا رساله رو مفصل مطالعه میکنه بعد وارد که تا بحث از من خارجه ببینید تبا ببینید آقاین علمه بزرگان چی گفتن از کردم تو برکه جا شما این رو نمیدید حتی یه جاهایی به اقوال غیر فوق هم تو بحث تخصصیشون مراجعه میکنه بحث قصاصشون رو مراجعه کنه فکرمونم بحث قصاصشون تو فضای مجازی هست یه درس خارج قصاصشون تو فضای مجازی هست بگردیو پیدا میکنم اشون تو یه جاهایی به اقوال حقوقدانهای عرب مراجعه میکنه حالا ما مدت درس خارجشون بودیم تهران بودیم واقع این نکته بودشم تصور یعنی تصوریم بود گفتن که آقا که رهبر وقت نداره تطبیق کنه همونجوری که ما میدون خدایش بعضی از تطباییش رو کن کرد میمونن آه فلان نشکیه مثلا مصر توی مقاله مقالهی مثلا تو بحث قصص ما یه همچین مطلبی داره اوالت شو برسید بخونم بشون که در کتاب معروف از تشریح الجنا... جناهی یا اسلامی تحریف هفتر قادر اودن این مطلب کار شده حال مسئله ای بود. منطقه ایوان کتاب این است که اولا نویسنده کتاب. اولا کتاب کاملون متعلق کرده. اولا نویسنده کتاب فقیه نبوده. حقوقدان نیست که به فقه اسلامی علاقه من باشد، لکن اهل استنباد نیست. این کار کار این فقیه است. سانیه آراب و نظرات فقه امامیه را که غالبا آراب و نظرات پخیز مدن نکرده. این رو کاملا مطالعه کرده. این بسید تطبیق به نظر میاد خیلی مهم باشه حالا از دیگه های فکریه باز در ساقه توجه به این نظریه خطابات قانونی هست نمیده حالا اینجا خطابات قانونی مطرح شد نشد توی این بسید روشت نسید نشده به صورت کلی میدونید دیگه آقای دو تا دیدگاه وجود داره نسبت به حکم دیگه احکام و شعری. بعضی متقدن که مثل مردو اینها که آ این احکام شردیه انحلال پیدا میکنن بر مسادی یعنی ما به تعداد مسادی انحلال حجم بریم اما اما میفرمون نه ما انحلال حجم نداریم بر افرادیم بس خطابات قانونی هست این که آقا میپذیرند نمیپذرند آقا این بس خطابات پانونی هست خب قبول دارند من تتبایی که کردم تو بیاناتشون زیاد می فرمانید رو مثلا ببینید یه جا شبه نهرز بکنم اون جلد سی از بیانات از الگابا صفحه سیه که بله امام یک مبنای مهم و غصولی دارن به نام خطابات قانونی ایشان خطابات شدی رو از حسن را از حبیل خطابات قانونی می دانن. مبناه خیلی مهم نیست که در چندین مسئله اصولی این مبناه اثر میگذارد و چون هم ما این مبناه رو چند جای دیگه این اما تو کل درس‌های خارج از اگاه که من تتبر کردم تقریبا سه جا تقریبا سه جا ایشون در واقع حرف امام رو میارن که حرف امام با توجه لینی مسئله رو مطرح میکنن و طبق بحث تمسخ به مبنای خطابات خانون میگه یه نتیجهی میکنه و بعد از آقا همین رو میپذیرن بگم ما میرون میپذیرن یه نمونه بارزش شما من یادداشت کردم ببین حالا مسئله خیلی نمیتونم باز کنم چون زمان ندارم خیلی بزرها ارزیم کنم ایشون تو بحث جواز سلطان تو بس جواز سلطان این که اونجایی که انسان میبینه سه قسم میکنه سه شرق میکنه شرق میگه انسان علم داره که در مال جاهر حرامی هست و عمر این حرام مردد است که منطبق باشد برها چیزی که مثلا به عنوان جایزه به این شخص اطا شده و آنچه در دست خود اون سلطانه و جز اختصاصات اون سلطانه یه جایزه سلطان داده ما نمیدونیم میدونیم آقا حرام به قدم کنیم این حرامه ما نمیدونیم که این مالی که داده این مال مردده بین این که منطبق باشه با که جایزه داده یا اون چیزیه که جزء اختصاصات سلطانه مثلا جزء لباسش شانس لباس خانم چونم خاطرتون هستی بحث شیخ انصاری داره میگه اگر اطراف علم اجمالی یک شقش مطلابه ما نباشه مطلابه مکلف نباشه بفکر میکنیم خب اون که نسبت بهش تحقیق نداره نسبت به ماوقعش هم چی جاری می‌کنه براه اجاری میکنم. یادتونه واقعی یک چیزی رسیده من اجمالا میدانم حرامه. اما نمیدونم این که حرام اینه که دست معنی یا لباس سوگولی سلطانه. من که نسبت به اون لباس سوگولی سلطان که دسترسی ندارم. چون نسبت به اون دسترسی ندارم. اون در واقع اکیم ندارم نسبت. به این علم اجمال شکسته میشه. روز شد نسبت به این مقدار باهرمونده چی بر جاری میکنم؟ خب این مبنای این هوک زمانی که شما انحلال رو بپذیرید یعنی این هوک بر تک تک این مصادیق چی شده انحلال پیدا کرده یعنی تک تک این مصادیق خودشون یه دونه حکم دارن که بعد تو بیا بگی من نسبت به این تکلیف ندارم نسبت من نسبتشم برعادت جاری میکنم اما اگر بحث ثبات قانونی رو بپذیری و بگید اساساً انحلالی صورت نگرفته دیگه دیگه اینجا علم الهی شکسته میشه یا نمیشه مشتبه مطرح شده است ببینید دست جو حضرت آقا نسبت به این خطابات قانونیه بحثه یه بحث بسیار بسیار بسیار مهمی که تو روش فقهی حضرت آقا هست تو روش امام هم هست ببینید این ایده رو در واقع مقتضیات زمان و مکان رو خب امام مطرح کرد شما یک شاید مختاری هم کتاب داره مفصل ولی این ایده ایده, ایده امامه در واقع مقتضیات زمان و مکان بر اشتهاد اون مثال معروفش هم شنیدید دیگه مثلا بزرگون میگن که مثلا حضرت حز... رسولی یه روایتی دارن می‌توانند قیل و شیل این رو رنگ کنید خیزا بگونید ولی ها تا شبه ها بوده و نصارا خب میگن امیرالمومنین ما رو رنگ نمی‌کن بعد اومدن اعتراض کردن به امیران ما گفتن گفتن پیامور فرمیدن خضاب کنید شما چرا عمل نمیکنید؟ چون شما این برای اون زمان بوده تعداد مسلمان ها کم بودن سن و هم بالا بود از رد میکنون بشاتون رنگ بکنید که ضعیف به نظر نه اما الان که اسلام تو قدرتی که لازم که شما رنگ بکنید این تأثیر مقتضییات زمان و مکان بر یک بکنید مثلا نمونهاشو من ارز بکنم هم توی فتاهای امام هست هم تو فتاهای حضرت آقا مثلا فتخون حجم خرید و پروش خون خون جزا نجاسات بوده حرام میدونستن چرا؟ چون اون زمان منفعت قالبش کی بوده پوشیدن بوده حرامش کردن استفاده برای رد هم می کردن اما منفعت قالبه نبوده منفعت قالبشه بفرمایید. نوشیدن بوده خون رو حرار کردن حالا امروزه که یه منفعت فوق اغلایی پیدا کرده که های موقع جان یک مسلمانی وابسته به این خرید و فروش خونه های اشکال داره اشکال یا بحث شطرنج یا به تعبیری شطرنج اینو شما نگاه بکنید واقعا عجیب اون روایت شطرنج رو ببینید. اینکه که امام این رو حلال کرد. آقا و به همین خوب خود بحث موضوع شناسی تاثیر زمان و مکان بر حکمیه و در واقع بعد یک موضوعی که طبیعتا حکمش تغییر میکنه حالا بحث به نظرم دنبال بکنید جالبه چجوری اون روایت های شدید و له در مورد شطرنج نگاه بکنید که اگر کسی بازی کنه کرده کنه چنین کرده در کعبه کرد، چنین کرده خیلی عجیبه اینا عرض کنم خدمت شما واقعا گفت فقط یه جیگری مثل جیگر امام میخواد که یه همچی کاری رو انجام بده سخته واقعا من یه پرانتز باز بکنم دوستان اون جلساتی که اوائل انقلاب بر زمان ریاست جنبیه آقا شروع شد و ادامه پیدا کرد این یه لجنه فقری از اساطیل و فضلای مثل این کریمی چریمی، این های استادی، این شاهودی و بزرگان دیگه که اینا جمعی شدن مسائل فقری مطرح کردن یه توصیفی اون زمان، اون زمان های شاهودی، مرموان شاهودی از خود از اتا آقا دارن اول مقدمه میگه، این مقدمه خیلی مهمه میگه فقیه اون فقیه که بتواند مسائل زمانه خودش رو حل بکنن. فقیه اون فقیه که بتواند مسائل زمانه خودش رو حل بکنن. فقهای های گذشته ما مسائل زمانه خودشون رو حل کردن. ما ما اگه کسی الان فقیه ادعای داره باید مسائل مبتلابه و مورد نیاز جامعه را حل بعد ایشون میگه حضرت آقا تو حل مسائل در واقع جدید و مستخصی که وارد میشد میگفت اون لژین فقیه ایشون از همه فقالتر بود بس و جمع میکرد و واقعا ما اقساق اون موقع چون میدهیم ما اولا این تو اشتهاد آقا و مجلد آقا پر وعدیس ایشون میگه ما دیدیم که آهی چریمی میگه که ایشون اگه بالاتر نباشه اتقال مصاویه بعد میگه آهی میگه ما ایشون خصوصیت ویژه‌ای بیجه، مشترید واقعی رو داره یا یعنی الان ما گرفتاری داره میگه یعنی مشکلات جامعه ما بحث اقتصاد اقتصاد اسلامی آنتداری خود اینا رو باید چی حل بکنن الان این انباشت مسائل علوم انسانی علومی که مربوط به انسانه عمل مچلب عمل مچلب رو چی باید حل بکن، تکلیف چی باید مشخص کنی فقه باید مشخص کنی یعنی منسانی ما گرفتاری منم این داری گرفتاری تو تربیت گرفتاری تو سیاست گرفتاری بری بری واقعا وضاقت امور خارج ما داره فقهی میگرده یه جوری دیگه داره میگرده های من متناسبه با احکام فقهی داره میگرده تو اونا نمیتونیم اشکال کنیم ما. اگه اشغال کنیم بسم الله بدید، چارچوب بدید، نظام بدید، ما عمل کنیم. الان هر رئیس جمهور مکسبی هم که میاد یه سری به حوزه میزنه، آقا دارید درمخصار اقتصادی. این همه داد زدن قبل از انفجار که آقا این اقتصاد، اقتصاد نول لیبرالیستی فلان و بیچاره کرده ملت رو. خب الان آقای رئیس اومد، کو برنامه ما کو؟ پلیس چارت دستش بدین. بله. ما که خیلی مطلب مهمیه که فقاهت باید به سمتی بره بله به عنوان مقدمات شما صلات بخونید حج بخونید چند تا باب عبادات رو بخونید معاملات رو بخونید اما اینکه همش بشید اینها آیا این معمول شده حالا شرعتی وقتا می تنظیم بکنید خب یه ذره رو بگیرید ان چند مسئله دیگر رو مطرح بکنم اینو به عنوان یک پرانتز باز کردم ببینید آقا می‌گن علوم انسانی ذاتاً مسموم است و همین علوم انسانی الان دار... داره کشور ما رو می‌گردونه و حقیقی ان تحقیقاً دارن ارزان چند سال درگیر این هست عمده مشکلات کشور ما ناشی از حالا بریدیم روزا رو برقرار گاه این وقت تأثیر زمان و مکان تو تغییر مداد شد الان این مثل خون رو که مثال زدن این شدن رو که مثال زدن این رو تغییر مداد شد مداد شد یک وقت تأثیر زمان و مکان در تطبیق اون موضوعات بر مصادیق. بعدا شما الان ببینید نفق فرض، نفقه رو نگاه بکنید الان در واقع موضوع فقیست میگه درست آقا گوش برش, برش میشه الان این نفقه هی زمان تغییر میکنه نفقه خانوم ها چه ساله پیش با نفقه خانوم ها الان متفاوته الان من فکر میکنم شوخی, شوخی جدی میگم فکر میکنم بسته اینترنت جز نفقه خانوم ها باشه درسته آتایید میفرمایید یعنی شما ممکنه پوشت خونه نباشه خانوم چیزی نگه ولی اگر بسته اینترنت نباشه طبیعتن شبیه متعرض میشه دیگه واقعا تغییر میکنه. یا مثلا بحث دیه رو شما نگاه بکنید دیه علیه بحث جدی در مورد دیه وجود داره علیه اینا بستن با شطور تو رواهتم شطور اومده ها یا حله یا دینا، طلا یا شطور آقا این حله که گفتن سده است خب مخیر هم از میتونه که مکلب مخیره ستا آیا این حله الان صد دست شما شی کشم بگیرید درست میشه حالت دو تو هله بوده دیگه هلهام بوده که خوشم اونو بذارید شطور این بحث جدیه مثلا این شطوری که اون زمان مطرح بوده و مبنای یه قرار گرفته آیا این شطور الان کار کارکرد رو داره حالا منم فتوا بدمم فقط دارم میگم تا عمل کنید ببینید ببین بالاخره اینا تحصیل زمان و مکان دیگه این شطور زمان اهل بیت خبیل خیلی یک در واقع کالای بسیار جرام بخوابه کارامت بوده وسیله نقلیه بوده شیرشانی خوردن گوشتشانی خوردن همه چیش استفاده باشه بباییه میگو بگو سلام هم زرف کن بذار دویه آره گوشی موبایل همه چیش استواره ولی المان شطور اینجوریه واقعا نه وسیله نقلیه جدیه نه گوشتش اقل نسبت به شرکت بگوشت داره نه من شنیدم که بعضی از این شرکت های بیمهی سر سال که میشه چون میدونی مقنا رو با شطور محاسبه میکنن میخوان در آقا دیگه رو تحنیم بکنن که بیمه ها پرداخت کنن سر سال میشه بعضی شرکت ها میرن شطور وارد میکنن قیمت شطور رو میشکردن شطور وارد میکنن قیمت شطور شکسته میشه وقتی تنظیم شد قیمتشو دورد رد میکننده این نفتاییه رسوز قایم جواهر می فرماین که از اون روایت سیع و تیبه از امام باقی چنین به ذهن می نیسد که مبنای تقیمه در هر سرزمین آن چیزی در جا بیشتر یاب شدن مثلا شما تو اروپا رو جا سرسر زدن شما رو خواهی شما کنید برست شد بعضی از حسیرات زمان و مکان و. کشف مصادیق جدید برای موضوعات هستش مصادیق جدید برای اصلا مصادیق سبق رمایه ببین تو فقه داره میگه بعضی ظاهرا هر چیزی که مبناش برد و باخت باشه چه رهان باشه چه رهان نباشه بعضی قدماون ما میگن میان حرام با این ملاک تمام این ورزشا میشه چی حرام چون تو فردو باخت هست بعد شما یا مثلا فرضون مصادیق احتکار اون چیزی که تو رو اومده گندم، جو، کشمش، خرما، قند، جو، روغن زیتون، ولی جا نمک و تاشین شده. ما میتونیم اینا رو مبنا قرار بدیم. خب اون زمان جو در واقع یک قلت بوده. خیلی از مردم جو می‌خوردن. ما مثلا جو احتکار کردنش برای کسی میساحت. پس انگار نسبت به جو در واقع فاکتور وجود نداره. این پیوند اعضا رو ببینم چون آقا خیلی خوشاثر بوده چون یه بحثی وجود داره که چون شما مرید پیوند اعضا چه از آدم زنده بگیرن چه از میت، پیوند به هر حال میت هست وقتی از بدن جدا میشه میت هست. خب اوایل انقلاب این بحث بود دیگه. تازه این بحث پیونده اعضا اومده بود و تازه مطرح شده بود دیگه. پیوند از امام سال 1357 استفتا کردن. امام فرمودن که تو ایشون کنم در صورت که پیوند اعضا اسباب نجات یک نفر از مورد باشد به حسب شهر مانند همون زمانم هم خیلی سر صدای گریم آقای همیچین هست. البته خیلی اون موقع چی میگن بازتاب زیادی نداشت چون تو کشور ما خیلی مرتلابه نبود چون اون زمان های تکنولوژی پیوند اعضا رو نداشت ما داره یک نفرم باست بره خارج کشور ما. اما سال شست و هشت این دکتر فازر که در واقع پدر پیوند اعضای ایران هستش که این رو دوباره اواخر عمر امام استفدا کرد از امام که آیا بیمارانی که مرگ محصه شدن میشه اعضاشون رو پیوند کرد که باز دوباره همین بسمت مطرح شد و امام بدبای به جواز بعد رفت که مجلس رو دو دفعه تو مجلس یه دفعه تو مجلس نتیجه نگیره بعد رفت شوره نگفان شوره نگفان رد کرد بعد این مسئله رو خود حضرت آقا چون خود حضرت آقا من هست خود حضرت آقا پیگیری کرد تا به سمن میشه یعنی قانون شد کشور ما من که فکر کنم وقتم تمامه یا مثلا مسائل ارز کنم خدمت شما که قدیمی مثل قرارداد بیمه. شما های رفوقه میگن که اون اناوین معاملات منصوص است یعنی تلقی از شعر است. اونایی که شاره گفته اگر یک قرارداد جدیدی هم میاد باید تحقیق که از همون عناوین کلی بیوارجاره چون نمی دونم چه مسائل قرار بگیره خب بحث این بود که بیمه وقتی خودمون از اینا قرار نمیگیره بهسا امام اونجا فرمودن آقا یه دونه بیمه یک قرارداد مستقل ده نه صلح نه است و اشکالی هم نداره اینا تاثیرات زمان مکان که به وضوح اینو تو بحث هم فقه امام هم تو بحث فکر آقا ما این رو میبینیم احتمام ویژه به رجال و نظریات دقیق رجال است. یک کتابی رو ما کردیم در مورد دیگه پایان نامه داری که فکر کنم مثلا دو هفته اینکه که نظرات خاص رجالی عزد آقا دفع میشه یک کتابی هم داره تقریم میشه انشالله فکرم کنم تا چند ماه آینده توی بازار بیاد حضرت آقا انصافاً تو بحث رجال متخصصه واقعا تو بحث رجال متخصصه هم توی بحث مبانی کلیات رجال هم توی تطویق سغریات رجال هون راوی شناسی انصافا تطبعات خیلی خوب. حالا اشانا این بیاد بیرون تو معرض دید آقایون قرار بگیره برگسته بودن فخر حکومتی دیگه بیست بکنم بحث توجه به قرآن همون نشتهی که عرض کردم برید ببینید اون بحثت ناموسیقی ایشون تو موضوع شناسیر قنا تکلیف رو با قرآن مشخص می کنه البته تبقیه فرایندی الان بس چیز نشو نگید آقا چه ربطی داره قنا مفهوم عرفیه بعد برید عرف ببینید برید ببینید چند مده عرف هم مراجعه ولی تکلیف نهایی رو که غیب موزه ان سبید الله رو تو حرمت میاره از طریق توجه به برگان هست توجه به مساله عامه و موضوعات معاصف ببینید سر بران حیف هم شما تشریف آوردید و زحمت بشیدید و توی روز جمعه حیفه این بحثا رو من سر رو بگم ببینید این خیلی مهمه ها اول یه پراتز رو کنم ببینید فقه آقا اگر میخواید بشناسید فقط به نباشت های به بیانات های آقا چون آقا بیاناتش موزگیریهاش از باب در, در از جایگاه یک فقیه این آقا فرمایش که دارن به عنوان یک فقیه میگن. من دیدم این جلسه ایشون با اصحاب موسیقی داشتم اول انقلاب. اینا این تار و تمپور اینا رو هم آورده بودن. اون یه چیزی هم مثلا نواختن آقا هم اون جلسه بودن. آقا که کردم به صحبت گفتن آقا بنده که جایی نشستم این موسیقی شما رو حرام نمیدونم حالا اینا بعدش استفاده نکنن که بگن ای آقای که موسیقی را حرام بود ما ته مبانی فقهی موسیقی, موسیقی رو حرام نمی‌دونن ولی من با شما اصلا عین عباراتتون که من با شما تعارف ندارم آن. این حرام باشه بعد با جلسه رو ترک می‌کنم یعنی من اینقدر ایشون دقیقت که توی همین بحث بسه انرژی هستی رو نگاه بکنیم خیلی از سیاستمدارا بعضی از آقایون علماتون چند ساله یه انتقادشون این بود بود آقا ما چه نفت داریم دیگه ما چه نفت داریم ببینم چیکار چرا ما باید اینقدر هزینه برداشتم ما چه علام داره مملکت میچاپ علوقا میگم اون آدمه کاری میکنه ما که دره سوخت فسیلی داریم دیگه چرا خودمون درگیر کنیم با غرب خب بحثش اینه مصلحه عامه و بتون آینده اینجوری نیست شما نسبت به اونها بی‌تفاوت باشید بگو آقا حالا اینا البته مصلحت اونها در چهشون حرفش می‌گید خصوصه فسیلی تمام میشه و بعضی از اینا سوخت‌های ما رو می‌گیرن ذخیره میکنن باباشون اینا می‌گن ذخیره می‌کنن تو چاهشون بعداً این سوخت فسیلی ما تمام بشه اون به ده برابر قیمتاً می‌دن یه اصطلاح داره امنیت من اسم این امنیت انرژی آقا این رو دنبای بکنیم امنیت قضایی امنیت ملی امنیت قضایی تو بس گندم بود؟ آقا چقدر توبیدن؟ که آقا کشورد خودکفایی گندون بسید یه اتومدن گفتن آقا خودکفایی گندون چی برای ما نمی صرفه؟ آقا گندون بارد کنیم عرضون تر درمون آقا فهمون چه بیدید که بعد از جنگ اوکران و شد، اینا بزرگترین صادر کننده های گندم بودن. گندم تو دنیا کم شد. حالا اگر زمانی گندم نایاب شما به ده برابر خیمت هم نبیدن. آقا فرق بودن امنیت قضایی، امنیت انرژی. آقا اینا آقا اصلا. چی میگن؟ از روی فقاهتشون دارن میگن. بفرماید. بخص نگاه منظومهی به فقه توجه به بود شریعت سهل, سهل و سمه توجه به بنای اغلا، ارتکاز اغلا، بخص استظهار عرفی این برید خواهشم ببینید توی همین کتابه غناموسخه استظهار عرفی، توجه به ارتکاز اغلا، بنای اغلا تکیه بر تراس فقهی توجه به اصول کاربردی در خلال مباحث من در بعضی میگن آقا وقت نداشته اصول درست بده نه اینجوری نیست به نظر من آقا اون تعریفی که از علم دارن آقا علم البد علم نافع باشه بعد اون علم نافع چیم که علم نافع علمی است که مسئله ای از مسائل اجتماعی جامعه را حل بکنه بزرگ با این تعریف از علم نافع علم اصولی که یک علم است لازم نیست انقدر به صورت مستقل و گستردوش فردا بشه لذا ایشون مباحث اصولیشون رو ذیل مباحث فقری مطرح میکنن اگر برسم به جایی مبنه اصولی رو داشت همونجا توضیح میدن در واقع نتیجه گیری میکنن و میرن دیگه. رعایت اهم و مهم ضرورت رعایت مساله اساسی جامعه و توتن و تخخور مساله نسبت به دیگر رعایت مساله آینده و بهرهگیری از ذرقیت کارشناسی و فحص کامل افعاد علمی و عقلانی از تاله اینا هر کنون توضیحات خاص به خودش رو داره ازمایی میکنم مقدار از وقت ما می گذشت بله من ده چند تا از این سوال ها ببینم توشونه چند تا دو چه دیگه باشه الان چه سه هست بحث کتابی که قرار چاپ بشه بحث بنا موسیقی از دیگاه آیت الله خانده. حالا البته اینو چون انوانشو کنی دفتر نشون اون ماکتی که به من دونم روشینه زده بود. حالا اگر دقیقه نوز عوض نشه اونو موسیقی موزلن سبیل الله کلیست. آه کلی نیست. خود آقا دقیقا شاخصه موزلن سبیل الله رو دو جا بحثی سه جا بحثی دو جا تو دنا برس میکنه یه جان تو موسیقی میگه این موزه لحظه بیلله میتواند از حیث آهنگ باشه واضح آهنگی که در واقع تحریف کننده باشه عرفم میفهمه حالا آلا آهنگی که تو پارتی زده میشه آهنگی که مثلا فرد فرمایی یه سروب انقلابی داره کاملا غرف میتونیم تشکیسی یا نسبت به محتواس که محتوا مطالب انحرافی نداشته باشه، باش بعد دسمت به زمینه این زمینه این آقا نیازه توضیح داره وقت ندارم من توضیح دارم. نه کاملا اتفاقاً اونجا به تفصیل بریم نگاه کنه هم تو بسید کنیم چهتا تو دسمت دناش توسید جا بسید کنه هم تو قسمت موسیقی بشید در نورده ابزار نمشه نظر از آقا در موسیقی های محلی مثل قرب و اینا آقا ابزار موسیقی رو میفرماین موهند و ابزار مشترک فکر میکنم یه دونه ابزار بود آقا دستشون هر حساس بودن این الکترونیک هست فکر کنم آقا اون حساس روش حساسون رو قبلا دیده بودن حالا تو اون کتاب تو بخش ششومه شما تمام استفتحات از حضرت آقا رو در مورد موسیقی دستبندی دست کردیم دستبندی کردیم میتونی اونجا ببینیم آقا میفرموند ابزار مشترک دقت قدمتانی اتزا مشکلی نداره اما یه نکشه بود اما آقا می فرموند صدا سیما حقه دادن نداره دادنشو این روید به این چه خودتون دوباره. دقیق ایشون که ابزار مشترک خلق و اشکال ندارد. اما نشان دادن آلات موسیقی در صدا جایز نزده دید برای مکتب نجف در مسائل مستحدثه موسیقی و جاز یا بقیه مسائل مستحدثی که اصلا روایت معتبر ندارن چجوری عمل کنند؟ این تو سؤال تو فقط یه کلی سؤال نکن، خودش یه رساله است. نمی‌دونم بعد تک تک رو بیاید ببینید. اصلا چیز بودم، آقای خویی، آقای خویی این جالبه. آقای خویی، باقی که نجفی است که اگر موسیقی برای درمان باشه اشکال نداره. چاله با، بر خود من چاله بود. شما میدین؟ یست داریم که از آنطور با این معنی لا خیلی فی خیلی در حرام وجود نداره و این ملاک نه مثلا چیزای حرام از وقت که نه این چیز نداره این هیچ موقع درش خیلی است زد شکاف نمی‌دهد تما زدی ولی خود از ابتدا نظرشون که می‌شه اگر واقعا متقاضی تشکیس دانیم نفری یه افسوت یه گرفته که مثلا موسیقی چگونه می شود توجه به اثر و لازمه بود و عنوان ملاد قرار داد یعنی ممکن است حرام الهی توجه به اثر و دلاغا برخ وجود داره بین استنباد و فتحه اینو دقیق بفنه یعنی شما دارید عرض خدمت شما که متعلق سوالشون رو میشه ما به لازم تمثل بکنیم و حرام الهی نه حرام الهی رو حرام نمی خواهیم بکنیم آسنه سنخ با اون چیزی که میخواد عمل مکمله فرق دی. جامعه رو اشتباه کنی با بسیاری فرق. یه موقع شما داری استنباط بازشون کنی، یه موقعی داری فتح با می. فتحویه این مکمله میخواد برای کنه. گاهی موقع شرایط زمان و مکانه مکان باشه شی اگر شما با یه فتحویه رو مکمله میدی باعث پس هرجو ماجور جامعه نشده. چی می اون اختلال نظام میشه. پس فقط دادن واجب نیست. فقط چه پاس دادن واجبه. ما دنبال بکنید فهم اجتماعی دقت بکنید. فهم اجتماعی استرجی. فهم اجتماعی روایان. یعنی چی؟ یعنی شرایط نگاه کردن به شرایط اجتماعی گویا فهم شما رو از بعد تاکید این چون ما این اسلام این خاتمه دیگه این اومده اشکار بکنن همشیت بکنه، امور مسلمینا تا زمان ظهور اله یوم قیامانی این مهدار تراثی درست ما ما اصلا مدنانم یه جایی واقعا نمیتونیم به که یه فتوای اسلام داشته باشه که شیرازی نظام مثلا زندگی مسلمان رو از هم بکشه اینطوری فکر میکنم نظر شخصی محرز میکنم که اگر ما یک استنباطی داشتیم که بعد دیدیم این استنباط رو اگر بخوایم مثلا پیاده بکنیم نمی سازه با نظام مسلمان به نظرم تو استنباطتون باید بازنگری کرد یه وقت که برگرد از اول یه بازنگری بکن شاید یه استظهار از یا باید اشتباه کردیم شاید اطلاقی که بگو کردین اطلاق نبوده یا شاید نه ما مزیت فکر کردیم اصلا مطلق بوده این توسعه و تضییق رمان ازم مشخص شد پس دو تا مسئله یکی بحث استنباط بحث علمی حالا شما بحث کنید اما زمانی که خیلی فقه بدی باید ملاحظات نظام زندگی مذهبی رو داشته باشید دیگه یعنی هوهای فقهاش این بودش که استنباط استنباط کنه آیا نمازه چیز چه میگن؟ نماز و قضا فوری یا آقا میگن فوری نیست نماز قضا بعدی آنی توی استنباتش بسیدون بگیر نماز قضا فوریه چند از این موریده، از این موریداش نیست پهگیش رو کنه تو خونه از رقصه رو خدا لغن ده کنه با این فرقانی که باید مثلا 20 سال نماز نکندم ولی بعد تو خونه بمونم تا این رو خلاصه اجابیان له بعد واقعا با مسئله مهمی مسئله فتفا مسئله فتفا مسئله میکنم وقت شد حسنه باشید خدا و الحمدلله رب سلامت جلسه بود سادمینا زدن حالا این شرع تو نمیشه اون خوندن بود خب بعد اونجا هم یعنی نظرش هم اینه الان که موهاش بیرون باشه خیلی بساله چیز نکنه آقا که فرمایشش معلومه دیگه ببینید حالا آقا حجاب رو کشف حجاب هج... نشون حجابی کشف حجاب رو حرام شرعی و سیاسی میدونن اما شل هجابی رو یه گناه میدانم که وقتی عمومی بشه دقت میکنم میره تحت آن نیاز نیازمان کرده باید, باید شرط امراف وجود داره نه باید ببینید اونجا جواب میده من, من به نظر شخصی ما دارم میگم اما دختری که اون شرایط میدونه میخواد بیاد مثلا آقا ممکنه بیاد ببینید شرط اون اینجوری شل هجاب اون با یه علمه شما فکر, فکر نکنم آقا درون چی میگه نمیگه نگی دادا جا من درون آقا نستم ببینم چه لفت.